هزار افسان برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد سلام پلوتون با تجب و خوشحالی به پرهای طلای غاز خیره شد و بعد با خوشحالی اونو برداشت و چون هوا کمیتاری شده بود به ای که در اون نزدیکی ها بود رفت تا شب رو در اونجا بمونه صاحب مهمونخونه سه تا پسر داشت اونا وقتی غاز تلایی رو در دست پلوتون دیدن با خودشون گفتن ها حجب پرنده یک پراش تلای ناب ناب چه درخششی دارن بعد هر پسر کردند کردن که یه پر تلایی غاز داشته باشن پسر بزرگتر با خودش گفت باید صبر کنم توی فرصت مناسب یکی از برای تلایی این غاز رو برای خودم بکنم اون چه شنیدید بخشی از افسانه غاز تلایی بود از مردمان سرزمین ترکمنستان برگرفت از کتاب افسانه های مردم دنیا گردآوری عبدالرحمن دیجی، محمد قاسا و فاطمی دیدبان. اگه تمایل دارید بدونید ماجرای این نفسان به کجا ختم میشه و چه اتفاقهایی رخ میده، امشب بر میمارو تا پایان بشنوید در زمانهای قدیم مردی بود که سه تا پسر داشت. اسم پسر کچکتر پلوتون بود که همه اونو مسخره میکردن و به قول معروف هیچ کس براش تره خورد نمیکرد. یه روز برادر بزرگتر تصمیم گرفت به جنگل بره تا کمی ویزوم جمع وری و به خونه بیاره. مادر کمی آب میبگه تازه و کیک توی سبدی گذاشت تا پسر هر وقت احساس گرسنگی کرد از اونا بخوره. وقتی پسر بزرگتر به جنگل رسید، مردی رو دید که قد کوتاهی داشت و خاکستری رنگ بود. مرد کوتوله به پسر سلام کرد و گفت پسر جان، کمی از اون کیک و آب میود به من میدی؟ من خیلی گرسنه و تشنم. اما پسر بزرگتر که جوون ادبی بود گفت کیک و آب میود بدم به تو؟ مال خودمو بدم به تو؟ من نه کیک دارم نه آب میوه خداحافظ و بعد به سرعت از اونجا دور شد و مرد کوتوله رو تنها گذاشت پسر رفت و رفت تا به بیش زاری پر از هیزم رسید با خوشحالی شروع کرد به قطع کردن درخت بیچاره اما هنوز چند تا ضربه بیشتر نزده بود که تبرش شکست. تیغه تبر هم محکم به بازوش خورد و زخم ناجوری برداشت پسر مجبور شد هر چه زودتر به خونه برگرده تا زخمش رو مداعا فردای اون روز پسر وسطی برای جمعآوری ایزم به جنگل رفت. مادر برای اونم مقداری کیک و آب میوه تازه گذاشته تا با خودش ببره و هر وقت احساس گرسنگی و تشنگی کرد از اون بخوره. پسر وسطی هم مثل برادر بزرگترش در میونه را به مرد کتوله رسید و مرد کتوله از اون مقداری کیک و آب میوه تعوضه کرد. پسر وسطی هم در جواب گفت اگه من کیک و آب میوهم رو به تو بدم پس خودم چیکار کنم ها از گرسنگی و ضعف میمیرم و بعد مرد کوتوله و گرسنه و تشنه تنها گذاشت و رفت که با تبرش درختی رو قطع کنه اما خیلی زود به سزای کارش رسید اون وقتی با تبرش درختی رو قطع می‌کرد تبر شکست و تیغه تبر محکم به پاش خورد و زخمیش کرد پسر وسطی مجبور شد برای معالجه پاش به خونه برگرد. مادر که از فرستادن دو پسرش برای جمعوری هیزم ناامید شده بود به شوهرش گفت ای مرد، زمستون داره از راه میرسه و ما هیچ هیزمی نداریم. اجازه بده این بار پلوتون برای جمعوری هیزم به چنگل بره. مرد پوسخندی زد و گفت پلوتون دو برادر بزرگترش از عهده این کار بر نیومدن زن، اونا زخمی برگشتن، اون وقت این پسره که از اونا کوچیکتره از احتگی این کار بر میاد، نه نه، یه حرفو نزن زن. در این موقع پلوتون از راه رسید و چون حرفای پدر و مادرش رو شنیده بود، اصرار کرد که پدرش اجازه بده این بار اون به جنگل بره و قول داد که دست خالی بر نگرده. خلصه اونقدر گفت و اصرار کرد تا بالاخره پدر قبول کرد و گفت باشه پسرم برو، تو هم باید یه چیزایی یاد بگیری، فقط فقط اگه, اگه اتفاق بدی پیش اومد فوراً به خونه برگرد. پسر قول داد که دست پر به خونه برگرده و اگه اتفاق بدی برش افتاد فوراً برگرد فردا صبح زود مادر برای پلوتون یه دونه کیک آب میبگه تازه آماده کرد و پلوتون از مادر تشکر کرد و به طرف بیشزار به راه افتاد. پلوتون وقتی به بیشهزار رسید اونم مثل برادرای دیگش با مرد کتوله خاکستری رنگی برخورد کرد. مرد کوتوله به پلوتون نزدیک شد و بعد از سلام گفت ای پسر جوان من خیلی تشنگرستم. ای پسر جوون، من خیلی تشنه و گرسنم. آیا چیزی داری به من بدی؟ دارم از گرستنگی و تشنگی ضعف میرم. پولتون با خوشرویی گفت: البته که دارم دوست عزیز. البته من فقط یه دونه کیک دارم ولی خب اونو با هم تقسیم میکنیم. نصف نصف بیا. پولتون وقتی کیک رو در آورد با تعجب دید که کیک یکی نیست. بلکه دوتاست تازه آب میوه مقدارش بیشتر شده پلوتون با خوشحالی به همراه مرد کتوله شروع به خوردن گردن مرد کتوله به پلوتون گفت آه تو پسر مهربونی هستی من برات دعای خیر میکنم. حالا این درخت خشک رو قد کن توی تنه اون چیزیه که متعلق به توه مرد کتوله پلوتون رو به زیر درخت خوش برد و بعد از پسر خدا حافظی کرد و رفت پلوتون شروع کرد به تبر زدن به درخت خشک وقتی تنه درخت روی زمین افتاد پلوتون دید یک قاز از توی اون بیرون اومد قازی با پرهای تلای ناب پلوتون با تعجب به پرهای تلایی قاز خیره شد و بعد با خوشحالی اونو برداشت و چون هوا کمی تاریک شده بود به مهمون که در اون نزدیکی ها بود رفت تا شب رو در اونجا بمونه صاحب مهمون خونه سه تا پسر داشت اونا وقتی غاز طلایی رو در دست پلتون دیدن با خودشون گفتن عجب پرنده قشنگی پراش تلای نابه چه درخششی دارن بعد هر سه پسر آرزو کردند که یه پر طلایی غاز رو با خودشون داشته باشن پسر بزرگتر با خودش گفت باید صبر کنم توی یه فرصت مناسب یکی از پرهای تلایی این غاز رو برای خودم بکنم وقتی پولتون برای انجام دادن کاری به خارج از مهمون خونه رفت پسر بزرگتر به سراغ غاز طلایی رفت و دستش رو دراز کرد تا یکی از پرهای تلایی غاز رو بکنه ولی انگوشش سخت و محکم به بال غاز چسبید پسر هر چی تلاش کرد که انگشتش رو از غاز طلایی جدا کنه نشد که نشد در این موقع پسر وسطی هم از راه رسید و بدون هیچ سوالی اونم غز کرد یه پر طلایی از غاز بکنه ولی اونم به درد برادرش دچار شد و انگوشتاش به غاز چسبید چند دقیقه بعد پسر کچکترم اومد دوتا برادر فریاد زدن همونجا بمون. به ما دست نزن ولی برادر کوچکتر توجهی به حرف برادرای دیگش نکرد و گفت شما شما همیشه همه چیز رو برای خودتون میخواین چرا من یه پر تلایی نداشت باشم ها؟ و جلوتر رفت و همین که دستش به تست برادراش خورد محکم به برادراش چسبید اونا مجبور شدن تا زمان برگشت پولتون به مهمونخونه صبر کنن شاید پولتون بتونه اونا رو از این وضعیت نجات بده پلوتون که به مهمون خونه برگشت به سراغ غاز تلاییش رفت و وقتی اون وضعیت رو دید از تمع پسر خبردار شد و بدون اینکه کاری به کار اون سپسر داشته باشه و حرفی بزنه غاز طلایی رو همراه پسرها برداشت و به راه افتاد پسرها فریاد زدند آهای ما را کجا میبری ما نمیخوای همراه تو بیایم پولتون گفت من دارم قازم رو با خودم میبرم اگه شماها به اون چسبیدین این مشکل خودتونه از دست من کاری ساخته نیست پسرها شروع کردن به سر و صدا راه انداختن در این موقع کشیشی که, که از اون حوالی میگذشت به پلوتون نزدیک شده و گفت این پسرا رو کجا میبری پلوتون گفت من اونا رو نمیبرم اونا خودشون دارن دنبال من میان من فقط دارم غاز تلاین رو میبرم کاری به کار اونا ندارم پسرها به کشیش گفتن پدرجان پدرجان لطفا ما رو از دست این پسر نجات بدین ما نمیخوایم همراه اون بریم ما باید به مهمون خونه برگردیم پدرم حتما تا به حال نگران شده کشیش به پسرها نزدیک شد تا اونا رو نجات بده اما همین که آستین لباس پسرها رو گرفت اون هم به قاز چسبید کمی بعد اونا به گورکنی رسیدن وقتی که گورکن کشیش رو دید که دنبال پسرها میدوه فریاد زد پدر روحانی چرا اینقدر با عجله میرین ما اونوز مراسم داریم پدر روانی بعد دامن لباس کشیش رو گرفت و تا دستش به لباس کشیش خورد اونم به قاز چسبید و مجبور شد به دنبال اونها بدون اونا همینطور که میدویدند به دو تا روستایی رسیدند که هر کدوم یه بیل روی دوششون بود کشیش از این دو مرد روستایی کمک خواسته گفت فرزندان من فرزندان من بیاین به من و گورکن کمک کنین و ما را آزاد کنین خداوند شما را ببخشه و آرزوهاتون را برآورده کنه مردان روستایی به قصد کمک به کشیش و گورکن نزدیک شدن اما اونا هم به کشیش چسبیدن و مجبور شدن دنبال بقیه بدون حالا هفت نفر دنبال پلوتون و قاز طلایی می‌دویدن اونا رفتن و رفتن تا اینکه ببینی ای... رفتن و رفتن تا اینکه به یه شهر رسیدن حاکم اون شهر دختر زیبا و خوبی داشت اما این دختر اونقدر جدی و اخمون بود که تا به حال کسی نتونسته بود اونو بخندونه به خاطر همین هم حاکم اعلام کرده بود هر کس بتونه دخترش رو بخندونه دخترش رو به عقد اون در میاره و داماد پادشاه میشه. پولوتون هم وقتی این خبر رو شنید با غاز پرتلایی و هفت نفری که دنبالش بودن پیش دختر حاکم شهر رفت. دختر با دیدن این هفت نفر که دنبال هم میدویدن و به هم چسبیده بودن شروع کرد به خندیدن. حالا نخند کی بخند. ساعتها خندید و خندید. این شد که پلوتون حتی عروسی کردن با دختر حاکم رو پیدا کرد. این شد, که این شد که پلوتون حق عروسی کردن با دختر حاکم رو پیدا کرد. ولی حاکم از دامادش یعنی پلوتون خوشش نایمد. و برای همین هم شروع کرد به ایراد و بهونه گرفتن و گفت پسر جوان، اول باید بری و مردی رو بیاری که بتونه آب یه آبنبار رو به تنهایی بنوش. بعد میتونی با دخترم ازدواج کنی. پولتون از این خاصهی حاکم سخت ناراحت شد و به فکر فرو رفت. ولی یهو یادش به مرد کوتوله خاکستری افتاد و با خودش گفت: آه شاید اون کوتوله مهربون بتونه به من کمک کنه. آره؟ باید برم سراغش. پلوتون بعد از قصر حاکم خارش شد و یراس به جنگل رفت ولی هرچی گشت خبری از مرد کتوله نبود که نبود پلوتون نومیدانه خاص برگرده ولی یه دفعه صدایی به گوشش رسید ای جوان به من کمک میکنی؟ پلوتون به طرف صدا سر چرخوند مرد غمگینی رو دید که روی زمین چون می زده پولتون از اون پرسید چی شده؟ چی کمکی از دست من ساخته است؟ مرد جواب داد آه من خیلی تشتم مقدر تشنم که اگه یه دریا آب بنوشم نوشم بازم سیراب آب نمی این حرف رو کشینید با خوشحالی گفت گسته نخور، گسته نخور، من میتونم به تو کمک کنم، با من بیا تا بتونی سیراب بشی مرد با خوشحالی گفت، آه، واقعا میتونی منو سیراب کنی؟ آه، آه، نمیدونی چقدر تشتم پلوتون مرد تشنه رو راست به آبنبار را حاکم برد مرد هم فورا شروع کرد به نوشیدن آب آبنبار و هنوز چند ساعتی نگذشته بود که تمام آبها رو سر کشید و بعد در حالی که از پروتون تشکر میکرد از اونجا دور شد. پلوتون با خوشحالی به قصر حاکم رفت و به اون خبر داد که دیگه آبی توی آبنبار باقی نمونده و باید چه زودتر مراسم عروسی رو برگزار کنن اما حاکم که نمیخواست دخترش رو به یه جوان فقیر بده باز هم بهونه آورد و این بار گفت آه. پسر جان تو این دفعه باید مردی رو به من بیاری که بتونه یک کوه نون رو بخوره پولتون این بار هم به طرف جنگل رفت و همون جای همیشگی مردی رو دید که کمربند پهن و بزرگی دور کمرش بسته بود این مرد که خیلی هم بود با دیدن پولتون گفت ای پسر جوان کاش میتونستی به من کمک کنی پولتون گفت چه کمکی؟ مرد گفت من تمام نونهای نانوایی رو خوردم ولی چه فایده هنوز هم گرسنم آه شکمم هنوز خالیه این بند رو دور شکمم بستم تا از گرسنگی ضعف نکنم پروتون خوشحال شد و گفت ا فور بلند شو و دنبال من بیا تا یک کوه نون بت بد بدم و بخوری بعد مرد گرسنه با خوشحالی به دنبال پلتون برافتاد حاکم هم تموم های کشور رو جمع کرده بود و دستور داده بود یه نون به یه کوه تیگه کنن مرد گرسنه به قصر حاکم که رسید فورا شروع کرد به خوردن نون یه روز بعد اثری از نون نبود که نبود پلوتون برای بار سوم از حاکم شهر خواست که مراسم عروسی رو برپا کنه. ولی حاکم باز بهونه آورد و گفت: تو باید یک کشتی داشته باشی که هم روی دریا و هم روی خشکی راه بره. هر وقت که تو با این کشتی به اینجا اومدی من دخترم رو به عقد تو در میارم. پلوتون باز هم به جنگل رفت و این دفعه مرد کوتوله خاکسری رو دید که اونجا نشسته بود مرد کوتوله از دیدن پلوتون خوشحال شد و پلوتون ماجرای درخواست حاکم رو براش تعریف کرد مرد کوتوله خندید و گفت <تصفيق> این که کاری نداره من اون کشتی رو برات می‌سازم بعد خیلی زود یک کشتی بزرگ برای پلوتون ساخت که هم روی دریا و بعد خیلی زود یک کشتی بزرگ برای پلوتون ساخت که هم روی دریا و هم روی خشکی راه می رفت. پلوتون از مرد کتوله تشکر کرد و سوار بر کشتی به طرف قصر حاکم رفت. حاکم با دیدن کشتی فهمید که دیگه نمی تونه بهونه بیاره و بالاخره قبول کرد که مراسم عروسی پلوتون و دخترش رو برگزار کنه. خلاصه پلوتون افسانی ما با دختر حاکم ازدواج کرد و سالهای و سال با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کرد. امشب افسانه قشنگ قاز پرطلوی رو براتون نقل کردم از مردمان سرزمین ترکمنستان برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم دنیا گردآوری عبدالرحمن دیجی محمد قصا و الله دیدبان افسانه‌ها بیتاریخ و بی‌زمانند افسانه‌ها و قصه‌های آمیانه با هر محیط اجتماعی و محلی منطبق میشن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 هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار فوزیه میر دریکوند تیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرو